بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله الرحمن و سلامه علی سیدنا رسول الله و آله الطایبین و طاهرین و معصومین و دعوت الدرسیم و تعالی اجمعین اللهم افرنا جمعیان مشترین و الحمد در یا ما از این عبابی که مربوط می به ما دو بار رو خوندیم و خلاصه اینکه در این دوبار روایت این متعارضه متعارض بود که البته رفتی هم به ما نحنوی پیدا میکنه یکیش این بود که اجر محرمیه و عجر نائه کره بود که ظاهرش مثلا کراحت مستلع است که نائه مهمت مشکو و این لازمش اینه که خود غنا جائز باشه یکی هم روایتی بود که در اعراس بود مادم یک سه علاق از اونم روایاتی بود که مطلقا عجرال مغنیه و سندال مغنیه سختن. اینم داشتیم حرامان و سختن داشتیم. داشتیم. این طاعته ای از روایات بود که مربوم شیخ کولیمی هم مقدارش آورده البته روایات که الان عرض کردیم ایشون در جلد پنج کافی آورده بعد در جلد شیش در غیل اشده آخر باب اشده خود باب انا رو آورده این دو تا باب رو فاصله یک جلده آخر بابه شد یه سال خدا رفضی صاحب که اینا نزدگه هم ببینه سکتم تو جا مون اقالیت هم خوشتره هم آماده سه بابه خوشتره هم یا شهار بابه در سال وسائل سه بابه با فاصله 15 و 16 باب باب و بابه 99 ما انشاءالا فعلا خیرن چون این دار توائد رجایی صحبت شد سعی همه که نسبتا تونتر به هدف ما بیان روایات و مسائل اجمالاً هست سهت و صقمش و اما چون از این روایات در تفسیر آیات مبارک هست راجعه با آیات جداغانه برسیم چون مثلا مقام های بروجه اعتقاد داشتنی که از اعتقاداتوی شدیم در وسائل آیات رو نیبانده ازایشون تفکر جامال احادیس رو گذاشتم خاطر آیات ما هم به احترامیشون دو مرتبه در روایاتی که اینجا و آیات رو دوباره در سویشون میخونی و توضیحات تفسیری رو هم جا از میکنی. در حد روایت روا در نمونه از زیادی هستن. باب نازنو از ابلا و ما یکتاست. حدیث شماره یک محمد بن کلینی کلینیا، محمد بن اعرابیا کروستادیشون، اما محمد بن محمد اشعلی نه هم اجل الله تعرفند. آنها سریع که بزرگوار نیکرانی این ابل بلاد، کزایک، آن زیل شهاب سر از. حدیث حدهی طول غنا لا تقمن و لا الفجیع ولا سجاب و فیه ولا و ولا یز کل حل حلم فرشته هم در اون خانه حالا شاید مرحوم اردگری که میتونه حدیث صحیح سریع نداریم چون مرادش اینه چون این که صحیح که شاید گفته مثلا اینا با هم میسازه لازم میسالهم هم که حلمتی کن بعض از روایاتی که از زید شه ها ما اجمالاً در باب رنا، از زید ها چند تا روایت داره یا حالا یکی یکی جدی می‌خونم در ضمنش اشاره این حدیثی که امام خمینی واسشون صحیح بود و باز به همون اسناد ایشان از کلینی بعد ان حسین سعید و همون سند لا محمد بن خالد محمد بن خالد که برقی پدره جميعا عن النبر بن صبيغ از درست بد نیست ولی حالا پیدا درست نه به اصطلاح منسوب و منسوب واسطی بعد نیست درستم فارسی اشاره احتمالیتون از بیران بود قال سهل تبو عبدالله انبولی از درجلبشتن بخور از ذو قال قوم ذو را این الان اشاره کردم راجی به آیه و چند آیات ان بعد متعرض میشیم حدیث شماره 3 من فرض هم سریعا این حدیث شماره هم قابل قبوله درست مذهب شادن واقعیه به بلا قابل و انا عبی علی اشعری انا محمد بن عبدالجبار عبا علی اشعری هستم که را احمد بن ادریس از اشعری قومه انا محمد بن عبدالجبار که از کوفه بوده هم سخوان این سند زیاد تکرار شده لذا احتمال میدیم قبیه طریق پولینی به کتاب سخوانه یه تریق روسی صحیح تریق خوبی هم زیاد هم داره انا عبی عیوب خزاز انا محمد بن مسلم انا عرصبا به نظر نصخه خرابی داره بعدش ثواب خالص چون علاوه بر ثواب کلانی ایراد نوع ولی او اما جلالت محمد مصطفی چون بیشتر خیلی بلی محمد مصطفی ایشون نعود به نظر من یادشه ثوابش ثواب باشه به نظر من اینو میگم نصخه صفوان اگر کلینی اشتباه نکرده باشه به نظر من نصخه صفوان یه خرابی داشت البته این نظری که ارز کنه رو قبارده شاهدش هم حدیث شمالی پنجه ببینید همین پنجه همین با علی ابن ابراهیم این ابن ابن عمر این کتاب ابن عمره زیاد شده از کل در مرحومه ابراهیم هاشم پدر علی ابراهیم چون ساکن کوفه بودن میگن بگم آثار ایران رو با خودشون خور میگن این تاریخ آمدن ایشان بگم بر ما روشن نیست حدودن با خود دیگه کلزا ما که مکتب خود از این زمان شروع شده آثار کوفه آثار بغداد ایشون به قول ما یکی از این آثار کتاب ابن ابي عامله نکته دیگه چون مشخصه از اون اونجایی نوشته شده احتمال میدیم قدیان میگم چون نگفتند مشایخ این راهنمایی چون خیلی جذابشه یعنی براشون نوشتن احتمال میدیم ایشون گزینشی نکرده هرچی چیزی رو آورده یعنی فرق بین احمد ارشدی با ایشان اینه احمد عشقی اون رواز که قبول داشته میورده لن چون از کردن اینه که از کارها بود یک کتاب دیویست تا دا هبیست داشت ستاش ربونه همون تحدیث میکردن حتی بعضشون تو اجازه اجازه نمیدادن اصلا میگوشن من اجازه میدم شما احادیث این کتاب ناکه الا اون احادیث هست تو اجازه هست علایه حالیم اینجا مقایسه بین دو نسخه هست نسخه سخوان و نسخه ابن ابي عم هردا در اختیار كليلي و ازان شريف ببین بین حديث شاهد ها ان ابي ايوب اين عالم محمد بن مسلم لقد سب الله در حال شواهد خارجی هم همین به معيد كنه به نظر ما نسخه ابن ابي عم درسه نسخه صفران خرابي ده ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجات اهل ولايت الذين لا يشهدون الزوج قال القنا ولی که این لایشه بود یعنی مجالیسی که چون از که هم در جاهلیت هم متعارف بود تو خود محکه متعارف بود به خصوص باز توی طائق خیلی متعارف بود حالا بشتر تو مدینه نشین بودم خیلی متعارف که کنیزه های میگیرستن خونه های قرار میدادن این کنیزه ها مطوری میکنن مردم میخوندن مردم میرستن او جا خوش میکردن این لایشه دونه زور حزن می‌گم که زور شامل غنا هم میشه زور برای انحراف نه کجی طور که از زور از گونه باشه بله اکثر در یعنی چون احتمال میدیم که مثلا قوله زور بوده وشتن او اون زور چون لایش حضور این مجلسی که به زور به احتمال داره احتمالی که ما دادیم شاید روایت اصلی وجتنا لو قوله زور بشه به هر حال این دو تا حدیث صحیحه چه طریق صفوات و چه طریق مرحوم ابن عبی عمر و بعد نمود را به ذیلات آیه که انشاءالله در اشاره در. حدیث شماره 4 مرحوم کلینی ان محمد بن یحیی استاد ایشان ان احمد بن محمد ان معمر بن خلاد است که چواب برای محمد محمد نیست معمر معمر بن خلاد ایشون هم سببندره حسن رضی الله عنه از امام ازاد سامون داره نرف کرده این قصه ای تا داره تو و بعنو اورید و بن ابن ایسر علی که از بنی عباس بوده در والی مدینه شده یا در مدینه بوده و خانه ینزل وقعر محمون و علیه صوبان غلیزان دو تا پیراه لباس بستا کلوف صوبان غلیزان مراد این نیست که لباس فقط خشه باشه نهره یه لباس لباس کسادی بوده که مثلا از علما و فقاها و زهاد اینجوری بوده صحبان غلیزان لباس عادی نبوده کوشیدن اون کسی مثل کسی مثلا بگیم با لباس عبا اماما آدن حالا <تصفح> ممکن است گویم بزن عبا اماما رو بگیم زقدر برمید ظاهرن صحبان غلیزان اشاره به این باشه فقاق فلقیت و امرأتاً عجوزن و امرأتاً جاریتا و قلتی ها قلت عجوز اتباه ها تا دو تا کنی و قالا نه بلا که لایشتریه لا مثلوک لایشتریه ما مثلوک چون لباس لباس کقاها و اینها بخیی تو اینها نمیخرید که همون دیگه نشون بوده که اول و کقاها جایی مغنیه نمیخرید این تایید مفضل سندش معتبره این نشون میده که اصلا عام هم همین بوده قلوت و علمه قال لرن اهلاح و مغنیه ولی اخراز آمره. زامره بهتا مزمار میزن نه میزن ایکیش آوازکونه ایکیش هم بسیار از سائل ترم بوده شما رای پنجم که پون نه امام هم مخانم تعیید کنند که که انما تو ذهنیت مردم این بود کسی که با این لباسه این شهر نیستیم مغنیه بخاره این افعال فاسق و پاجه و افعال لاعبالی این کاری تعییدن به این مطلع و, کلام و از از نه اون که اون زندگی کرد کی که حدیث میکنه چرا اینه؟ چرا تمام کلام امام میگه خب بعد یه سوان بعدش هم داره که بعد از پیش داوود و داوود خیلی, خیلی, خیلی احترام کرد یک شعر الیشون شعر خیلی که زیاد نیست بله دست درآمد از اون که داوود در افرادش گفت که خیلی احترام کردن به بالاشون و از برخوادش این حالا سابر نیاز و اما احل انه امام و تا آخرش اینه باید که سبتمه حدیث شماره 6 مرحوم کلینی انهو انه ابی ابن آن کتاب ابن ابی ابن اسماعی. اینجا را ما علی ابن رو نمیشنسیم احتمال میبیم از مثلا یکی خاندان اون اصحاب نعمار تقریبا اونم علی بن اسماعیل داره برادر اسحاق برادر به نام اسماعیل داره این پسر اون باشه علی بن اسماعیل به نذر که بیان روایت داره علی بن اسماعیل به علی علیه اسماعیل بن اما دین اونم اگر اون باشه سراست به با هر حال این که ابن عبی آمد نقل کرده خودش معید قبیه این ابن مسکان محمد ابن مسلم به نظرم این حدیث صحیح حالا مرموم آیه مقدس عربی دیل فرمودم قال سمعت و یقول علجنام ما وغد الله و علیه نا روز و کبائر و تلاها دهل آیه من الناس من یشته دهل حدیث لیو ظلن سبیل الله انشاءالله در بحث تفسیر متعرض میشیم چون مخصوصاً ادهی از احر سنت که قال به حلیت به هستن از این آیات جواب دادن ما بگیم مناسبت تحرز می کنم الله. حدیث شماره هفت هم عدی هن ابن عبی عمر. باز هم از حتاب ابن عبی اومد واقعا نشون میده که چرا ابن عبی اومد این احادیث رو جمع کرده در مقابل اون بحثی که دیروز کردیم که واقفی ها هم طرف نحقی می کرده. هم مهران ابن محمد الان اشون نمی از قبول ابن نبی عمر باید اعتمار من عبد الله علیه السلام قال سمه توی قول و من ناس منیشتری در حدیث البته من کراراً از کردم رو به وقت ابن عمر یه مقداری باید بیشتر ولی که خیلی فوق العاده دره دره قدره چون گاهی رواسی که ها داره که اصحاب هم در مراسیلش تعمل کردن و گاهی هم ما اصلا نمیفهمیم خود من یادم هسته یه چیزی نمیفهمه صحب رو گه نمیفهمه حرص کنم که مرحوم به اصطلاح این دوبار الان ادام خود میبنه و قنام ما و, و الله علیه نام این حجیسته که خوندیم هفت شماره هفت بود همون باب شماره 16 باز کلینی علی ابن ابراهیم انه عبی انه نبی عمر یه چیه ام مهران بن محمد ابن حسن بن هارون خیلی عجیبه احتمال میدم شاید در دو جای کتاب ابن ابي عمر بود حالا کلینی کرده خیلی عجیبه اینجاش مهران محمد بن ابي عبد الله حسن بن هارون في ابي الله قال سمعت ابو عبد الله رسما يقول ان الله لا و من ما با الله عز وجل من مثل يا شيخ یا دو نسخه از کتاب ابن عبی عمر روزه یا دو جایی کتاب الا خیلی بریده کلینی آدم دقیقیه و معلوم میشه در اونجا از مهرانم محمد حسن نهاون صرف داده ظاهرش این طوره باز معید این مطلب که اونجا صرف شده حدیث شماره 23 این حدیث شماره 23 از کتاب سدوبه کتاب مرمون کلینی نیست حدیث شماره بیست و سه مرحوم صدو در خصال ان عبیه پدرش صدو رو پدر که جای و قدر ان سه از سعد ابن یزی. توی بحث اول که ها کسی کشن حرف کرد از اجلی از حال و از روات معروف کتاب ابن عبی عمیر ان ابن عبی عمیر واضح لیگردونه خیلی احتمالش واضحه که آلوازشون نرمونه ابن پس دو نسخه از تکاب ابن عبی آنیر شد نسخه ابرائیب نهاشه و نسخه مرحوم یعبونیتی اون جام داره ان مهران ابن محمد انهل حسن ابن حارون توی نسخه مرحوم صدوق هم حسن ابن حارون آمده به تو مطن دیگری احتمالا روایت تختیعی شده قال سمیعت ابا عبدالله الاسلام یعبود هلغینا او یورش و نقفاق و یو عقبول فرد تقدر این که من حیلی هم روایات رو مقایست رو کنید و جلالت شعن افراد به جوی خودش محفوظت و سیکس میکنم کلینی با جلالت شعنش امانت رو به دقیق مراعات کرده خیلی دقیقه در یک جا افتاده به اصطلاح امروزی امروز در کتاب شناسی تر ترمیم هم تسخیه قیاسی تسخیه قیاسی که نوشتیش رو با شما بردیم دستگاری بکنیم بگیم نبی نظر مانی تو بودیم ایشون تحصیح قیاسی نکرده در یک جا مهران محمد بوده یک جا مهران محمد حسن و حارم و در که تمسک باعی مبارکه شده الان احتمال میدیم یا دو نسخه از کتاب نبی عمر بوده یا دو جای کتاب بوده و الا دقیقه به این ترتیب ایشان بخواهدم که اشتغالی رو ما تکرد حدیث شماره هشت باز مرحوم کلینی انها از علی ابن ابراهیم انا ابی من بختم سه باب نه اشتباکم باب صد هم تحریم استعمال ملاهیه حواسم پرس بود باب صد یک هم تحریم سماع غنار ملاهیه تا باب صد یک اشتباکم بختم اصطلاف صد و یک بختم سه باب اشون رو نه اشون در حدود پنج باب رو بوده سه باب اینجا دو باب سابه حواستم پرس بودن حالا یا حاله این حدیث و انصافا مثلا من میشه مثل ابن نبی عمر خیلی مصر بوده رو احادیث حرمت این ها این که ما نگاه میکنیم چون من از کردم خوب دقت کنیم ما یک مسادر اولیه داریم یک مسادر مترسل داریم مسادر اخیر داریم این چون آخر که جمبردی میکنیم حالا پیرنبار رو برستش میشه حدیث چماره هشت باز ابن عمر با که اینجا مرسده حالا گفته شده مراسیدشون قبل قبوله هن عاوی عبدالله که الله حالا و قول از زور حالا قول از زور از حالا این که در زیده آیه وارد شده متونش مختلفه من حرقنا من داریم و قول از زور از زنان دو از سخن سخن به غیبت هم گفته شده به دروغ هم گفته شده به نمیمه هم گفته شده به لنا هم گفته شده هر چیزی که از اون فسط طبیعی و سالم خارجه سوحن کجم حدیث شماره نه رو به مناسبت عبی بسیری سابقه هم قوم دیم ازت من اصحابی از تحلیم زیاد که خوبشون مشکل داره یحیب مبارک درست که من عبدالله جبله بزرگوار است و انصمام آتب نمیخان سرگاس و عبیسیران کذاره. آلت سنت آبادلار کوبلل الله عزیز جه. کاشتن ور رستن ال اوسام وشتن رو آلت زور و آل عقنا. شاید مورد بیان مستضعفش. حالا یه حاله حدیث مشکل داره اما خب ادیا در وایل در تفسیرش وارد شده. امس که این دو بسکودش مندم دیروز بود دیروز بود. بعضی از رویات قول زور داره بعضی از رویات مثل این دوار صد را آیرم داره و هشتن با رشت سند و هرز کنم زارند داره کسی اون رحل که خداوند قول زور رو همکفه بطپرستی حرام داده و یه توضیح هم تابعاون هرز کنشون در پایی مبارک هست بعد هرزم حدیث شماره ده باز مرحومه کلیمیه انا عدت من از خوابنا انا سهل سهل ابن محمد بن محمد بن حرید باشه ایشون هم ابو سمین از سیرتی که انا عبی جمیلن شده انا عبی اصامه این زیده زیده شماره یه یک باشه زیده بده. این زیده شخانه شده زاله قال الغنا عشق آشیانه دروگی و نفاق. حدیث شماره یازدن بعد اینجا گوش شکل و آن هم بازم از کلینی، انسر انل و شا، حالا زمانی که حسن رضا یا علیه السلام آی... یا بله بعد... یا یوسف الانال جناف و او قول <متحدث> الله و ما من الناس من یشتری لهل حدیث لیذل عن سمید الله من دیروز دکتر راستم کردم گفتم یک روایت دیگری هم به همین سند داریم احتمال بدیم که تخریش شده باشه اگر این بحث دیروزشان در عیادت مبارک آوار باشه توی ذیل توی ذیل بابه 16 اگر یاده باشه که جهر دیگم بود این این هست یعنی باب 16 حدیث 6 عین همینه ازت من اصحاب غنسر من الوشا قال سوئل عبال حسن انشراع المغنیه احتمال خیلی خویی میدین احتمال خیلی خویی میدین که این روح یکی بوده همه غنا بوده هم مغنیه وقت تختیه کرده باشه تختیه همه چی کرده؟ درست ما الان تشخیص نیمیتونه بریم و باز احتمال داریم که این همینطور باشه در شماره دو از باب چارده ادتون من اصحاب نهان سهل ابن زیاد ان الوشا قاب ان الرزا قاب سمنان کرده سختون اینجا هم داره سختون و حضر سمنان این مثلا به الغناعو اولالله از من یشتری لحوال حدیث احتمال میدیم حدیث یکی بوده و که کختی شده باشه حدیث شماره دوازده بود عدت اون از اصحاب انصار ابن ابراهیم بن محمد مدنی همون ذکره بود در باز ارسال خبر خرابی داره سؤال عنهنا عنه حاضر تقالا تخلو الله مؤذنا عنه خدا بونه نگاه نمیداره سرندش یه داره حدیث شماره سیزده عدت اون از اصحاب انصار ان علی بن ریان علی بن موسى میگن که دائما میگن گفتن حسین بن رسول نبرد اما فقط انصافاً مشکل تشخیصش رو میشه این علی بن ریانش هم ذکر شده علی بن ریان واکه این هم روشن نیست این باشه ببین حدیث شماره 14 تیمجا هست و رواه صدوق فی علوم الاخبار انا احمد بن زیاد بن جرف علحمدانی انا علی بن ابراهیم انا ریان بن سعد چی شده من نمی این علی ابن ریان یا ریان ابن سرد قال سلطا رضای اولا این همونه سلطا رضا علیه الان ما دقیقا و رواه فی قربل اصنات قال ان ریان ابن سرد و رواه کتاب رجال محمد بن حسن من علی ابن ابراهیم اونم ان ریان ابن سرد. این الان دقیقا برای ما روشن نیست که آیا علی ابن رعیان بوده یا رعیان به سر حال مجموعی این اصانی بر جهاش گیرای داره که آنه ارزم اما سند کل اینی که خب سهر داره یونسش هم خیلی واضح نیست برای ما کیه واضح سهر خراسانی که مال حضرت رضا سخنه و غلطان این نال عباسی شخصیست به نام برداره ایش هم در هاشیه نوشته های مرحوم های ردوانی به فیه اختلافات و لفظیه از که این حدیث خیلی پشویح داره در نقلش بله این وله عباسی زکر به انکه انکه ترخ صفحه بغنام تا اونجایی که ما میدونیم الان آن همین آمده که حضرت پانون روچه بغنام حضرت همه که از امام باگر هم سوال شده حضرت همه که خدا من تمیزی به این حق و باطل قرار روزه با خوده بکیم با خوده با خود خوده خود خود خود على رواه صدوق في احمد بن بن جعفر انا علي بن ما به وصاغت یعنی احمد بن رو توصيف کردن و مقصود از علي بن هم به خود صدوق برمیگرده، حمل زیاد زياد از از همدان ساکن بودن صدوق از سفر حج ميوازه به ایشون در همدان برخورد کرده از کان ربيان تعریفش میکنه خود نادر صادق ظاهرا به احترام تعریف صادق ما ایشون رو توصیف میکنین اما مشکلی که ما با ایشان داریم اینکه تا نیلام احوال بگم ایشون معظم روایاتش از علی بن الربیه شاید مثلا از یک درصدم کمتر یه چیزی یک درصدم مثلا غیر علی بن الربیه ببینید دقت بکنید خودش ما قومه است قومیه دیگه چون صدو اونطوری به یک ورثه جاری نمیذاره عمل کنه از پس این که آثاری از ابن از علی بن رواحین در حمدان بوده در طب نوریه خودش فقط همینش میخوام بگم این و این انفرادات صدوقم است که سیام نعل نکرد خیلی عجیبه یعنی واقعا مشکل داره چیه؟ من نمیدونم چیه بعد ما همین ظاهر رو میبینیم یعنی مردون صدو اونطوری که خیلی واضح داره نشون خب علی ابن ابراهیم میراسی قومیه خب ساتین و قول میشه آبدای صدو رو بهتر میشن صدو از تدرش نمک از علی ابن هم بیل واسطه میتونه حسارش به واسطه محمد بن محمد ابن اصام انه کورهی هم علی ابن به دو حسار مستونه حسار علی ابن رو نبود این که میره حمدان شخصی به نام احمد ابن زیاد از علی ابن ابراهیم احادیت هم بکنیم که صدو خودش اطلاع نداره یک را به اصطلاح ما مشکلی فهرستی داره نه مشکل رجالی. عرض کردم توصیف شده، توصیفش هم به صدوق وارد و توصیف دیگه مادر نشه از آشنا نشه. آشنای ما منحصر به صدوقه و صدوق هم توصیفش می‌کنه. در کتب رجالی منحصر به ایشونه. وقتی مشکلی نه، این علی بن ابراهیم چیه؟ این هم دوباره شو. بله، چرا؟ ریان بن س ریان ابن ثالث ظاهرن از اشائره قومه قابل اعتماد اجماله یک ریان ابن شبیب داریم ریان ابن شبیب از دستگاه خلافت درد تو به این آقا نداره او دایی محتسم عباسیه معمون که در خراسان بزرگ رضا رو بود معتسم داییش هم از بغداد وقت محتسم ساکن بغضا بود خلیفه هم نبود یه خلیفه معمون وقتی برادر معمون عصر خلیله هر دو فرزندان هارون اینا جزء عجایب روزگار واقع کردن واقعا عبرت آموزهاره هارون سه تا پسرش رو خلیفه قرار داد بزرگش محمد و دومیش هم بلاقدر امین و دومیش هم عبد الله و مأمون سومیش هم قاسم بلاقدر معتمد که به ترتیب خلیفه بشه محمد که یک سال خودی بعدم کشته شد رفت یک کار شد قاسم که اصلا خلیفه نشد بعد معتصم شد بعد از این... یعنی اون ستایی که ترگیم دازه بود به خلاف اراده پدر معتصم شد و از اجایب روزگار تا آخر خالف های بنی عباد که 656 در برداد وجودشون تموم میشه همه اولاد معتصم هم. نه از اولاد محمد همین نه اولاد معمون نه از اولاد قاسم هم هیچ کدوم خلیفه نشده این ستایی که پدر قرار داد واقعا و عبد و در الانی گوه اول عبدالدر تقدیر الهی می شد که تمام خلقای دانی عباز از نسل معتظم هم و خود معتظم هم مادرش کنیز بوده خوره نبوده معمون هم مادرش کنیز بوده اما خب خواهر نبوده اصلا با هم نسبت ندارن. اون مقروم ریان ابن شبیه بر جا داره که دایی معتظم بوده بر جا داره دایی معمون بوده شواهد بیشتر می که دایی معتظم بوده و او بوده که آمده از بغداد هر چیزهایی از ن میکن این رسه مع رو که یان روی محرم احتیت نشوی کان بای رسیدمال همدار یا میشبویبه. این داایی مسه معبای این با ریان ابن سرز قومی اووارد اشتباه بشه. متاسفانه در روایات ما بعض روایات توش و ابن به سر که ما را شبیبه اشتباه شده. من موارد این بحثش هم طول فقط برایید این احتممال دا یا سرد باشه. مثلا قومی بوده و مرحوم علیه نفرانیم در قوم بوده اما این شبیل نبوده. داشه سر تا رضا علیه سان یه اومده خراسان و علاقه بهترین سندش همون همریری است که قرب الاسناد این ریانه این سرد این رضا این بهترین سنده تو این اسانی دیگه لفتو داده همش بهترین تیل سهل خب تیلی وارده بحثی ها به جده نیش میخوایم تونطول دوازه بخونیم ا این دوست. ابن حض در کتاب محلا خیلی مصر به حلیت این قناع شد نظیر اسفحاق بعد این مطلب رو میارم که این مطلب در کتاب اهل سنت هم هست به امام باقی نسال داده نشده بعضی از مثلا علمای اهل سنت راجب به قناع احل سنت هم که اگر مگذر لاقع در حقه الباطل گفته خود برای در باطل قرار داده میشه ابن هرل میگه نه انا افور نه اگر میزالله در حق هست این مسئله چون اناد داره توی حلیت اجناد همین جواب داده که اگر میزالله همین حقی هم باطن تو اناد رو در حق بزید و که بما حدیث شماره 15 این شخص که ابن به اصطبال عباسی شخصی به نام هشام ابن ابراهیم یا هشام الاحمر یا هشام کسا حالا اینم خیلی، اگر از جاهایی که خیلی ابهام داره به نظر ما حتی به نظر ما میاد که ابهام نجیویش هم درست نباشه در اینجا. دیگه این یه خیلی طولانیه بحثش توی هشام نبرای محباسی، نیاز به یک شغل مفصل در هم به جالی و تفریحی و هم ترسی کاش اینجا نیست انشالله وقتی میگیم من الان اسم این زودیه چون شنی ندازه زرای اقبالو همیشه متقاعدش میکنیم. این به سر به جالی سر میشه که محل به عصبانی. حدیث شماری پوزه. باز مرموم کلیمی ان محمد افن یحیع ان افنی محمد که محمد است، از کردیدونشون از خوب آمدن به کوفه ابن فضل اینجا ابن فضل از سر نعلی که خیلی جوی قدر کتاباش هم بسیار کتابه خوبیه مراسیلش خوبه مرد مولا نیسته مرد و خیلی شغلا دزیده امیون نسبت به ابوب کیلدغرد سه دلیل فنن عبد احتمال قوی ما بیدیم که ایشون عبد برادر زراره باشه عبد و همون عبد مولا اله هم همینه مولا اله سامان هم هم برادر زراره ننوشتن علمای ما که من احتمالش بیشتر میدم اثبات این بحث ها احتیاج به یک بحثه جدیدی که الان داشج اینجا طولانی اپنم میگمش وارد این بحث بشین به هر حال ولی اضافه نظر ما این حدیث صحیحه حالا کچه هایت مقدس عذبیلی شدار که لعبدالعلا مشهوله یعنیت ابن فضال درسته اما حدیث قابل قبوله معتبر کاملا محتبره سهل صحب عبدالله علیه از عموم قلطان اهل مدینه از رسول ها رخ خصفیه یه قال جهنا کن جهنا احتمالا اون روایت داشته حالی ابن جعبت در فطر و ازها و فرح مراد از فرح همینا ها باشه راست خودی بود یه روز که باشه فقال کده رو دروغ میگن این خیلی بود مهمیه یعنی این در نصدهی که برسول دادن دروغه نلاعب داده بود اما خلق من سماوات از ما بین و لاعبین که تمسو که بین این آیند در واقع البته چون جایی که من میگم فقط همین جا اعماله جای دیگری ذکر نشدیم که به این آیه که انشاءالله بعد بحث آیات ارشد چون مقال ویل لفلان ممایسه رجلون لم يحضر المجلس نام یک شخصی رو بردن که یه اسم نمیذارن ویل لفلان ممایسه ظاهرا بود میموسف باشه چی کسی بوده من عرض کردم نوی عبدالرحمن نوب که از علمای بزرگ ایشون هست، محدث هم هست و در بخاری هم حدیث داره ابراهیم و بن سعد درباره عبدالرحمن نوب این با اینکه در گذشته مدنی هم هست این خیلی اعتماد شدید به دادم این ابراهیم عسا در بعضی از به اصطلاح نغول داره که بهش مثلا حدیث گوون اول یک جناب بخونید، سری بخونید بعد من حدیث بیا قبل از شاید مراجعه حضرت دیکچی شبیه این بوده، بیرون به فلان حمایت بای برکلانه که این مساله به نهم میکنه حالا یا ممکنه این اون بوده یا چیزی شبیه اون بوده که مثلا در اثبات حدیدیت غیران صحبت میکنه حدیث شماره 16 هم خوندیم چیزی هم اجزه برمند کردیم؟ ده نه کدی حتی این نرزه هم حدیث شماره 17 دیروز خوندیم که مرمون صدو میگه رومیه هم در عجر و مغنیت سختون از سر در مسادر ما مانه حسره کتاب صدوق جایی نیامده وقتی من دو جای رو دیدم یکی تو کتاب زیدی ها عجر امه انسان به صدقه دیم اجر المغنیه سختون اجر المغنیه سختون این تو دو زیدی ها دیدم عمالی علیه میشیه یکی هم اخیلا در کتاب اهل سنت دیدم اجر المغنیه و مغنیت سختون شاید مرمون صدوق هفت همون رویه نسبت من به کدام امام اشاره به هفت داشته باشه احتمال داره چون نگفته که از رسول الله یا از امام صادق در کتور زیدی از امام صادق لیکن جدا کرده اجل مغنی سختون و عجر مغنی سختون اما در اون من زمان رسول الله نرشو عهدستان و عجر مغنی و مغنی سختون خیلی روی حدیث سیناسی کار میکنیم که خیلی حدیث های شماله فی به اثانی دیه از که از اثانی که بعد به کتاب سحیل از آفزا گیروزم تو بحث تو بحث اصول متعرس دیم از سابره در مورد تا سند هست مجموعن. که بعضی از احادیستش مشترکه بعضیش نه ان آبای توضیحی بدم بگیر تکرار نمی کنی سمیش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقو اخاف علیکم استخفافند دین و بی الهکم بی الهکم یا مثلا حکومت بفروشیم پول بیده این حاکم بشیم بود و قاضی بشیم و انتتخل القرآن مزامی تقدمون احضر کن و لیسه و احضر کن پر دین حس کردن دقت بکنیم اصولا از همون زمان که مثل زمان خود به اصطلاح ابتداعاً اولین کسی که مثلا رسمن کاراقی در سیدو شهرزا زیب ریام کرده مثلا این بنامه یه این کار رو میتونند بعدم ریام های علوی ها در زمان بنی عباس زمان منصور زمان عبدالصفاه که اولین خلیفه هست. از سر سی و دو ما نداریم اولین مهمترین ریام ها زمان منصور دوان به ببند و یک مقدارم روایات دیگه هم دارم برمان این که مثلا دین چینی شده از بغیر و از افکان به قیل مانزر الله حکم و از کلم ما ادهی از روایات داریم که اصطلاحاً به اینها ملاحم و فتن میگن جمع آوری هم شده تو این روایات ملاحم و فتن من نگاه میکردم تو این کتاب زیدی ها تو کتاب یحیاد مرخوسی مثلا واجه به غنا چیزی نمیگه این بعضی از روابط ما یکی از علائم آخر زمان و مشاکل و ملاقین می پیدا می شود خطنه ها روی غناس. مثلا این حدیث شماری 18 اخواف علیکم استخباب هم بدیم این یک حدیث شماری 27 که عبی هم سلیمان مسلم خشاب عبدالله ابن جوریج مکی عطا ابن عبی رباه عبدالله ابن ربا عباس اینا به علسانه مختلف در مسادر مختلف موجوده ام رسول الله یه حدیث اشعاط ساعت از طولانیه ملابه رفتن بل این من اشعاط ساعت اضاعت سلوات و اتباع شهرات و المیل الالعهوان به اصلاح من داره وزید بل خودشون فرمید رسول دهن شده فرمده ها یکون و اقوام یک فعلمون القرآن لغیر الله و یک تخیزون هون مزامیه و یه و اقوام اتفقهون لغیر الله و تکشور اولاد و زنان از الله و یه بالقرآن و یه سحسون کوبه کوبه در روایه تکرار شده خیلی واضح نیست برای ما که آیا تبله یک تبل محسوس مجالس غنا بوده نه تبله جنگی حالا بندرش شده شا اشاره شایه بکن من معاذه ببینید در این روایه چند تا روایه ایکی دوزانیست چند تا شیدون رو بودن و ی فا اولایی که ید آن فی ملکوت سماوان در باطن اعمالشون ید آن الارجاز الانجاز فرس و نجز این هم برده یکی از اون رو شماره 27 شماره 31 و برده شماره 30 مرمون دیلنی در ارشاق منسلن قال رسول یه حرفی امتی الخصف و الغذ قال اولمت ازالفی آرسولا قال ازالف حرف معاذب همینی که می باش، باشی می زنن قینات در لغت عرب که است ذکیست که به عنوان مغمیه اتخاب میشه و شوربت الخموم از در کتب زیدیه این دوتار نیوانند معاذب و قینات نیوانند و الله یویتن اوناس من امتی علا عشرم و بترم لعب فیرس روحون قیرزنن و خنازی ورکول بازی هم صبح مثل بوزینه با به اسطلاح خوک میشن لستهلال همون حرام و اتخاذ هم القینات این جاری های این رو میخرند و بویش میشن و شور به خمور و اکل همون ربا و لبس همون حریه این هم دیگه حدیثی دیگه, دیگه. حدیث با سیویه ادا حمل از امتی خمسه اشار حل به همون بلا ادا کان الفی ادو ولن و امانات مغرمن و سادرات مغرمن و اطاع رجل امرهتن و اصفا امه بر و بر هم همجور میگه و الاخریهی که بله و تقضیل غینات و المعاذه و شرب الکمور الاخریه اینم مجموعه است که حالا من یک جمع کرده هست که جزء علامات آخر زمان اینا هم در باب حرمت غینات البته اینا سنت کردن نداشته که مخونگیر که هم سنت نداشته بله و اینم مجموعه از روایات تا این شماره نونزه چند دارد اکی دو هر الله علی محمد و عالی